مصنوی معنوی مولوی برنامه اول دیباچه بشنو این نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند کز نیستان تا مرا ببریدند در نفیرم مرد و زن نالیدند سینخواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور از اصل خیش بازجویت روزگار وصل خیش من به هر جمعیت نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم هر کسی از زن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم گوش را آن نور نیست تنز جان و جانز مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست آتش است این بانگ نایو و نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد آتش عشق است کندر فتاد جوشش عشق است کندر فتاد نی هریف هر که از یاره برید پرده هایش پرده های ما درید همچونه زهر و تریاق که دید همچونه دمساز و مشتاق کدید، دید نی حدیث راه پرخون می کند قصه های عشق مجنون می کند محرم این هوش جز به هوش نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست در غم ما روزها بگاه شد روزها با همراه شد روزها گرفت گربت و باک نیست تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست هر که جز ماهی ز آبش سیر شد هر که بیروزیست روزش دیر شد در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و سلام بند بکسل، باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، گر بریزی بحر را در کوزه، چند گنجت قسمت یک روزه، کوزه چشم حریسان پر نشد، تا صدف قانع نشد، پردر نشد هر کرا جامز اشق چاک شد او زهرس و عیب کلی پاک شد شاد باش ای عشق خوش سودای ما ای طبیب جمله علتهای ما ای دوای نخوت و ناموس ما ای تو افلاتون و جالی نوس ما جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چالاک شد عشق جان تور آمد آشقا تور مست و خرموسا سائقا با به دمساز خود گر جفتمی همچون ای من گفتنی ها گفتمی هر که او از هم زبان شد جدا بی زبان شد گچه دارد صد نوا چونکه گل رفت و گلستان درگذشت نشنو پس ز بلبل سرگذشت جمله معشوق است و آشق پرده ای. زنده معشوق است و آشق مرده ای. چون نباشد عشق را پروای او او چو مرغ ماند بی پر وای او من چگونه هوش دارم پیش و پس چون نباشد نور یارم پیش و پس عشق خواهد که این سخن بیرون بود آینه غم ماز نبود چون بود آینه دانی چرا غم ماز نیست زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن حکایت آشق شدن پادشاه بر کنیزک و بیمار شدن کنیزک و تدبیر کردن در صحت او. بود شاه در زمان پیش از این ملک دنیا بودش و هم ملک دین اتفاقا شاه روز شد سوار با خواس خیش از بهر شکار یک کنیزک دید شه بر شاه راه شد غلام آن کنیزک پادشاه مرغ جانش در قفص چون میتپید داد مال و آن کنیزک را خرید چون خرید او را و برخوردار شد آن کنیزک از قضا بیمار شد آن یکی خر داشت پالانش نبود یافت پالان گارک خر را در رو بود کوزه بودش آب می نامد بده است آب را چون یافت خود کوزه شکست شه طبیبان جمع کرد از چپ راست. گفت جان هر دو در دست شماست جان من سهل است جان جانموست دردمند و خسته ام درمان موست هر که درمان کرد مرجان مرا برد گنج و در و مرجان مرا جمله گفتندش که جان بازی کنیم فهم گرداریم و انبازی کنیم هر یکی از ما مسیح عالمی است هر علم را در کف ما مرهمیست. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان، عجز بشر. ترک استثنا مرادم است، نی همین گفتند که آرز حالتیست. ای بسا ناورده استثنا بگفت، جان او با جان استثناست جفت. هرچه کردند از علاج و از دوا گشت رنجفزون و حاجت ناروا، آن کنیزک از مرض چون موی شد چشم شه از اشک خون چون جوی شد از قضا سرکنگبین صفراف فزود روغن بادام خشکی می نمود از حلیله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد همچون نفت. ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولی را شهر چو و عجز آن حکیمان را بدید پا جانب مسجد دوید رفت در مسجد سوی مهراب شد سجدگاه از اشک شهر پر آب شد چون بخیش آمد ز غرقاب فنا خوش زبان بگشاد در مدح و سنا کی کمینه بخششت ملک جهان من چگویم چون تو میدانی نهان ای همیشه حاجت ما را پناه بار دیگر ما غلط کردیم راه لیک گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. در میان گریه خوابش در رو بود. دید در خواب او که پیره رونمود گفت ای شه، مجده، حاجاتت رواست. غریب آیدت فردا زماست چونکه که آید او حکیم حاضق است صادقش دان کو امین و صادق است در علاجش صحر مطلق را ببین در مزاجش قدرت حق را ببین رسید آن وادگاه روز شد آفتاب از شرق اخترسوز شد بود اندر منظره شهر منتظر تا ببیند آنچه چه بنمودند سر دید شخص فاضل پرمایه آفتاب در میان سایه میرسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال نیست وش باشد خیال اندر روان تو جهان بر خیال بین روان بر خیال صلحشان و جنگشان و خیال فخرشان و ننگشان آن خیالات که دام اولیاست عکس مهرویان بستان خداست آن خیال که شاه اندر خواب دید در رخ مهمان همه آمد پدید شاه جای حاجبان و پیش رفت پیش آن مهمان غیب خیش رفت هر دو بحری آشنا آموخته هر دو جان بدوختن بردوخته گفت معشوقم تو بودستی نه آن لیک کار از کار خیزد در جهان ای مرا تو مصطفی من چون عمر از برای خدمتت بندم کمر از خداوند ولی و توفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای ادبی از خدا جوییم توفیق ادب به ادب محروم گشت از لطف رب بی ادب تنها نخود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد مایده از آسمان در می رسید به بی و بیع و بی گفت و شنید در میان قوم موسا چند کس به ادب گفتند کو سیر و عدس منقطع شد خان و نان از آسمان ماند رنج زر و بیل و داسمان باز عیسی چون شفاعت کرد حق خان فرستاد و غنیمت بر طبق باز گستاخان ادب بگذاشتند چون گدایان ها برداشتند لابه کرده عیسی شان را که این دایم است و کم نگردد از زمین بدگمانی کردن و هرساوری کافر باشد پیش خان مهتری و یان نادیده از آز آن در رحمت بریشان شد فراز ابر برناید پۀی منع زکات و از زنا افتد وبا اندر جهاد هرچه بر تو آید از ظلمات و غم آن ز و گستاخی است هم هر که باکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. از ادب پر نور گشت است این فلک و از ادب معصوم و پا کامد ملک. بطز گستاخی کسوف آفتاب شد از آزیل ز جرأت رد باب. ملاقات پادشاه با ولی که در خوابش نمودند. دست بکشاد و کنارانش گرفت. همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. دست و پیشانیش بوسیدن گرفت. و از مقام و راه پرسیدن گرفت. پرس پرسان می تا به صدر. گفت گنج یافتم آخر به صبر. گفت ای نور حق و دفع هراج. معنی از صبر و مفتاح الفرج. ای لقای تو جواب هر سؤال. مشکل از تو حل شود، بیقی لقال ترجمانی هرچه ما را در دل است دستگیری هر که پایش در گل است مرحبا یا مجتبا یا مرتضا انتقب جا القزا زا الفضا انت مولا القوم من لا یشتهی قدردا کلا لئن لم ینتهی بردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند چون گذشتان مجلس و خان کرم دست او بگرفت و بردن در حرم قصه رنجور و رنجوری بخواند بعد از آن در پیش رنجورش نشاند رنگ روی و نبز و قاروره بدید هم علاماتش هم اسبابش شنید گفت هر دارو که ایشان کرده اند آن امارت نیست و ایران کرده اند بی خبر بودند از حال درون از تعیز الله مما مم یفترون دید رنج و کشف شد بروی نهافت لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت رنجش از سفرا و از سودا نبود بوی هر حیزم پدید آید زدود دید از زاریش کوزار دل است تن خوش است تو او گرفتار دل است. آشقی پیداست از زاری دل. نیست بیماری چو بیماری دل. علت آشق ز علت ها جداست. عشق استرلا به اسرار خداست. آشقی زین سر و گرزان سر است. عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن گرچه تفسیر زبان روشنگر است لیک عشق بی زبان روشنتر است چون قلم اندر نوشتن می شتافت چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب از ویر سایه نشانی می دهد شمس هردم نور جانی می دهد سایه خواب آرد همچون هم چون سمر چون براید شمس انشق القمر خود غریبی در جهان چون شمس نیست شمس جان باقی کش امس نیست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 واجب آید چون که آمد نام او شهر کردن رمزی از انعام او این نفس جان دامنم برتافته است بوی پیراهان یوسف یافته است از برای حق صحبت سالها بازگو حال از آن خوشحالها تا زمین و آسمان خندان شود عقل و روح و دیده سد چندان شود لا تکلفنی فینی فلفنا کل تفهامی فلا احساسنا كل شیء قاله غیر المفیق انتکلف او تسلف لا یلیق من چگویم یک رگم حشیار نیست شرح آن یاری که او را یار نیست شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر قالت امنی فانی انی واعتجل اون فالوقت سيف سیفون قاطع صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق تو مگر خود مرد صوفی نیستی هست را از نسخ خیزت نیستی گفتمش پوشیده خوشتر سر یار خود تو در ضمن حکایت گوشدار خوشتران باشد که سر دلبران گفته آوید در حدیث دیگران گفت مکشوف و برهنه گو این آشکارا به که پنهان ذکر دین پرده بردار و بره نگو که من می نخصبم با سنم با پیرهن. گفتم ار آریان شود او در ایان، نی تو مانی نی کنارت نی میان. آرزو می خواه، لیک اندازه خواه، بر نتابت کوه را یک برگ کاه. آفتابی کزوین عالم فروخت، اندکی گر پیش آید جمله سوخ. فتنه و آشوب و خونریزی مجوی بیش از این از شمس تبریزی مگوی این ندارد آخر از آغاز گوی رو تمام این حکایت باز گوی برنامه های خانش متن کامل مصنوی معنوی مولانا را می و و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردهاند. این برنامه های نیم ساعته هر سه شنبه ساعت ده و سی دقیقه شب باقت افغانستان روی موج می آید و چهار شنبه ها ساعت یازده شب، پنج شمبه ها ده و سی دقیقه شب و دو ها ساعت یازده شب بازپخش می شود. Bye.